حکایت اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت یا بنیه اینکه مسئولون یوم قیامت مازک تسبته و لایغالو به من انتسبته یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست جامعه را که میبوسند او نه از کرم پیر نامی شد، با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچنو گرامی شد.